و اكبر ب فرمودن دیروز از کردم نا متعرض بشیم ببین که واقعا مطالبی رو که در اینجا فرمودن اینها قابل اعتماد هست یا نه که داشتیم عبارت یشون در فایده ششم خوندی بل یک مطلبی رو دیروز کردیم از کتاب به اصطلاح همون وسائل احتمال کرد بر امورایت شهر بابایی یا شهیده سانی من جنوب درمون عبادت همون رو عرض کسیر نه ها که من دیوز عرض کردم که این که ما در خیار داریم کسیر نیست تو نیست که کسی نیازه باران شده بود که یک مطلب دیگری هست اون رو شد بشه اضافه کرد به کلام ایشان موارد که ایشون موردی کتاب رو از و این اونطور کسی نیست موارد محدود نست نیست و کتاب عوید الله حرمی و حاصلش شده که هم از ایکی برای علمه سبا خلا سلام به دو نح بوده یکیش همین که از که مثلا کتابی رو نصر حتی برد برنده برند برند برند نگاه کرد تحفظه یا کتابی خوبید الله رو سال ما رو, رو می نگاه این روز عرض وقت از که مشکل این معنی مثلا برایت این اساس سنده ششکار دارم اینشالا بردم متعرضش میشه که برزار جواد عرض میکنه که اصحار ما در طبیه بودن کتبشون رو زیر خاک دفت میکردن و اتونگرد ما حد حد این های میشه نه نعروب کنیم ما حد صوبه ها پر این ها هم این حد صوبه ها قبیل عرضه خوده این حد نه برزار مالی از این ایشون نداره شد من به این عنوان رو نگاهده این عنوان من اضافه کنم به الله ایشون همون سه مورد نرکل کرده که خیلی که خواهید نمید اما این هم هست و یکی دیگه هم اضافه میشه باید که در کلمات این ها نیام با اون عرض روایات برای این میمون ترشده حالا میخواد روایات معارض باشه که آدمان این و یا حتی روایات غیر حت من ارز کردم که ادهی از روایات ما اینطوریه که از ائمه متقدمین امام واقعی ما مطالب که نرد شده بعد ما بر حضرت رضا به برد ارز شده مثلا رو بیان ادهی که آباره که همه آلو کردن بعد حضرت آباره که مثلا این روایات درسته یا اون اینم ما داریم یعنی این روایات ارز نست کتبی که ارز شده روایات عرض داریم احساس ما اینه که باید عرض زیاد باشه این عرض چون همشانه که ما الان احساس تعارض میکنیم در روح امام و ساله خوب قطعا از حضرت جواد هم همین احساس داشته شده ما میکنه دیگه ما, امام میکن. ما احساس تعارض میکنم اونام احساس تعارض میکنم در هر دو تعارض موجوده ما الان اده از روایات داریم که این طوریه به امام مثلا امام موسیقی کنه از تداروزان از از رجعات هست از دیتون در توبیعات همیلی هست حتی تو توبیعات همیلی از امام ساله میکنه که در این مسئله تو تو ربایته ما چهار رو کنیم که امام جاظیه یه میگه روایات عرضه عرض خود روایات نه کتب روایات رو برای متخلیم ارز کردن یعنی همیتون که دیوز ارز کردن چوبیل این پیش ما تا زمان ایمان و اما این تنگیه و تصحیح و بعد بده نیشانه این تنگیه و تصحیح دویور دو شده یه منزایش تصحیح و علمان شده یه منزایش تصحیح و خوده حالا این نکته این رسمت ها گفته نشده حالا ایمار بودی فعالی متعرض نشدن قسمت مهمی که در کار هست همینجا زنی که از قسمت مهم که تصادفاً آن اخواری ها متعبیش شده اصولی ها نشده ما متفاستاً به, به این مناسبه که آیا این تنبیه و تصیحی که بردها شده آیا واقعا این مقدارش مستند به خود علما علمه بوده یا خود و علمه هم از علمه نگرده شما هستم تا ساد و تولید این بوده خب تا دیویست شرکت کرده دست کردی تا آزارشان رفاکت و رفتی ایشانه خب قطعا این روایت مطالب مختلف بوده در چیه؟ و محترم خورداره محترم خورداره. بر به فیلن میبینیم مختلف مغزازی برخورداره مختلف قرمی برخورداره آیا بامن این برمیگرده به قلمان یا در حقیقت ریشه هایی برمیگرده به خود این مطالب متشرفه این قسمت که این 110 سال در سالیت ما یه مقدار ابهام داره حالا قیده سرارا در شذره و این فاصله 180 سال 180 سال انتصافی مقدار نبا ابهام داره این احتمال قویه که روایتی بوده کتب معروف هم بوده شاء من در خلال مقصره شواهدش و نموناهاشش رو عرض می‌کنم گاهی بوده روایت حتی در کتب معروف بوده مثلا در کتاب نبی عمر بوده در معروف بوده کتاب های معروف خیلی معروف لیکن بعضها میبینیم که از خواب ما از زمان کلینی به بعد به این روایت عمل در این هست خب از کجا های میبینیم این در کتاب های معروف بوده در کتاب واقفیه میبینیم ما الان این مدار حقاست واقفیه داریم مثل حمید بن زیاب هن امن تماهه هن که معروف کلینی ها رو وگاری هم معارضن آبای من توضیح های شکن نمیم کنم کمیشون رد مثل مصادیق شدن این اینه که از جاهای مشکل ماست که از که انصافا کم روش کار شده و خیلی باید روش کار بوشه. فاصله بین 150 بعد از امام صادق تا 300-320 -30 این فاصله اطلا یک مقدار از روایات ما حتی کتر مشهوره محروفه ما قبول نشده شکل کلینی اونها را قبول نکرده فرصه شهر را قبول نکرده آیا این عدم قبول مرجعش و منچه اشتباهات از این بوداست که اینه مترخیر ما قبول نکردن این همون بحثی که به ریشه پیدا کرد که ممکنه از این همیز معتبر باشه لیکن خودم های اصحابه اعراض کردن این همیز از اعتبار ثابت میشه من این بحث رو اشکرم مترض شدم توضی بزنیم که ما باید به دنبال علل این بحث باشیم آیا فقط معلول رو نگاه کرده فرای این بحث دیدن راستان من ما الان احاضی دیداریم از کتاب رو نبی عمی عمید اکتاب رو نبی ماریه هستم محبوب مبانوسا یا فرسون بیدیم که کتابهای دیگری که پس قبض الله علی حلمی یا کتاب محمد حلمی اون وقت این روایت با این که در این مسادر محروفی بوده صحیحی بوده, جابتاده بوده. که که مسادر جابتادهی بوده میبینیم از همون خودم عمل نکردن بررسی که میکنیم توی یه مسادر فتری هستی و واقفی هست فتری اونو نقر کردن واقفی اونو نقر کردن آیا این توضیح جلال ها چه اجمالا هست میکنم تأثیرش این شده وقتیه شما هست کردیم خصوصا واقفی ها حالا فتری هاشون به این شدت نبودن خصوصا واقفی ها بود قطعا کنیم چون عیمه بعد از موسان جبر نهاز زاختا ما پرد قبول نداشتن کلا ما این توضیح داریم خیلی نقطه یه است تیز باید مسادیش را عرض کنم فعلا هشمالا میگنم این شاده چون نشده و ما می‌بینیم که واقفی ها چون به عیمه متخصیر اعتقاد نداشتن این احتمال داریم که واقفیها در مقام فتوا عدهو به عدها از روایت خود ما مشهور و مل ابناریامر نه روایات خود واقفیها مثل علی ابن ابی حمزه روایت خود ما مثل ابن الیام مراجعه کردند و به اونها فتوا دادن این احتمال رو ما مثلا مرهوم مثل آا خو روایت معتبر رسمس دو واقعی در سنر شهست محصول هم برده که ها به مرگامه هم محصول هم شده فرکتان از زمان کولینی روایت دیگه محل قبول قرار منداره فرسون یا محل یا خرار منداره ما در حوضه توضیح داریم احتمالا با این که قابل احتناس احتمالا این روایات در علم متأخر حدود شده بوده فرسن. این صدر کسانی که ادعا می که روایاتی که معتبر است و از مستر مشهور است که اعراض شده قبول می کنیم از که اینا قابلانی جنبال گرفتن ما جنبال تحبودشی برداشتیم کسیم احتمال قوی داره که اون علمای ما این روایات کتاب نبیانی رو احس کردن در حضرت هادی یا حضرت جواب حضرت قبول نفرمدن حضرت نفرمون که اینا قابل احتمال. علاقه اعتماد نکردن در ببارد نراشید که دروغ باشه یا مرد توش تقسیب شده یا پرستان تقسیب شده یا مشکل دیگه داشتیه یا طبیعتن ساده شده بحث صدور نبوده بحث حجیت نهایی در حجیت نهایی کجا نبوده در بوده این مسئله که قابل ترجونه یعنی اون نقطه خنمی اینجاست ما ازدهی از روایاتی که از هم برسار سرم کمترده و از مسادر معروف ماست که باقی بردم تشکالش اینجوریه مثلا خسین مثلا از واقعی و فکریه در سردش هستن این برسار این نقطه هست آیا اعراض و عمل را که از دیمی خبر با اینکه از این مسادر مشغولی برسار مپرده آیا این یکی اشتهاد علما بوده مثلا علما خودشون رو بود در مقام شب این براد قبول نشون یا نه این یک نوع تلقی از امام معصوم بوده این نوعی من احتمال میدم که وقتی یک درجه بسیار قدیرنگ میشه به احتمال بسیار قوی احتمال ترفیه از محصول این این که امثال مرمون نایدیان ناویدونی که این تحلیل رو رو باشن اونا مثلا زدن به این که چون خودما اعراض کردن این حجیه از هر دارن حتما بیوده بهترین توجیه فنیش اینه که ما با مراجعه به شواهد ببینیم آیا اعراض در این روایتی مصدرش محبوبه کتاب صدر اعراض این از ما چی بوده؟ یک نکته این بوده که علماء فرمیدن یا همیشون که ایشون میگه حمز کتور یا از روایات حمز بر ائمه متاخر اونا فرمونن بیر روان عمل نکنید اینا حمزش هم صدر این این اینطور نبوده که مرحوم شیف پولیگی یا دیگران یک روایات رو بیر حسب قوائد شهادی باید اصفاد کرده باشن باید اینکه که مصدر داره وضعه روشنی داره با داشتن وضعه روشن و مهداله همین اصفاق به روایت همین روایتی که ما مثلا پنجه زنگ تا زن گرفتن این از کتاب ابن که فقط واقعی ها نرون کردن کلیه هم از واقعی ها نرون نمیشه کتاب ابن عبی آمه بزرگان ما نرون طریق مادر نسخه ابن عبی آمه از فقط تجربه کنه محمد حمد ابن زیاد هم ابن سوائه هم محمد ابن زیاد من چند بار عرض کردم در مسادر وقفی ها در درجه اول و در مسادر قفقی ها در درجه دوم خالبا اسم ابن عبی عمد محمد ابن زیاده دیدم برزا میشه مشهور مجروبه نمیشن سید محمد ابن زیاده نبی عمد دو سا نسلسونیم محمد ابن زیاده پرشت زیاد کنیش عبا عمده خودشم کنیش ابو احمد ابو احمد محمد ابن زیا ایشون خوب فرس همین حدیث تقرد میکنه مرموم کلینه مذاب واقعی امداره جمح اصلا نداریم ما. هیچ رایی به کتاب جای دیگر نایمازه سردشم مخفره تقرد کنید سرد هم مخفره هیچ جای دیگر نایمازه الا کتاب رو نبی نصحی که الان ما از این کتاب داری نصحی واقعی پیاد نصحی اصحابان های آرده سند برسا بزار مؤسر ما شرا ندارید همه این این مؤسر این این هم نصحی مبهم صالیش حدیث ماست چرا اصحاب ما این مطلب و از کتاب ببینیم اگر ما کردن رو درده استعباد شده نگو این سالش که پنج جهت دنیا، ما اونا سان توانستیم. تازه وای که این ساله این هیچ وقت به نداشتیم. اونا چون مدرسه ما سال، مثلاً سنت رو شنیده کنیم، نه کمتر از سی پنج سال. این مدرسه مساله تهران سه دو سال دیگر که هیچ شهادت هم ما نیست از قبلی کل مدت بقایی که ما مشهد در کوفه بودن سه ساله این دو هم کوکی تو منگیل همچی برزده نظر داشتن تمام این روها و تقصیل تا سی ستا اوزا ما در نفس حاضر حالا این این وقت میکنه این نکته این از این که در کمتر مورد ترشت درگید این چه کارش بکنه رو بایید چه کارش بکنه علمای موامزن بکنه که خب آنه این که رسی کارش که کنه میکنه. ما مثال هست یعنی کنم شبیه این رو ما تو احکام داریم الان آن شده که نا قبول نمیم و را ما ماتبه آه تویان به قبول می کنیم و دو به نظر ما دو طرف قصه تحریر واقعی ندادن تحریر واقعی از قدیه اینه که این در این فتره ما بین کتاب ابن عبی و سر پرس مرحوم کلیمی حدود سر در سان دیست سال پاسل هست در این فتره زمانی آیا این میمو تکسیلی به علماء بخصن آیی میگو این نکنید برای در تقار به اشتباهه. اشتباه یا مثلا امام برای شکیف ف نگاه بسن بازن و ازا میشه این مقدر اینطوری در و این فرمی نیست فکرم همینطوره در فرم همینطوره ما این که حالا شدیه ها چه ارز میکنیم و این که حالا مناسبتی پیشی یک ارزش خاصی مثلا در میان کلمات علمای ما بخش خاصی باشی دراته ارزن بیشون که ارز کتاب رو مطرح کرده ارز روایات رو مفتر نکرد و انشاءالله چون داریم نقاط پنی داده چون عرض واضح داریم مثلا عرض کریم از اماموزا سوال کردیم از آبای شما اینطور طور شده این طور هم نمو شده آیه قابل قبول یا نه این طوری واضح ما معتقدیم دو سی بودی هم عرض داریم این نیست جورای گم عرضه شدن دویه اینجا مرحوم ساحای متعرض نشدن اما اینجا به اصطلاح موارد نیست که در درست بخوام برش ما عرض بخونم اینشالای وقتی دیگه متعرض این بحث میشم راجع به مسئله عرض و ارزشی که روایات عرض میدارد این هم راجع به این مطلوبی که ایشون در اینجا فرموندن بله. بعد بعد از اون عبارتی که مرمومه بعد, بعد از این عبارتی که ایشون از عبارت ابن قولبه داره که به عبارت ابن قولبه هم دیروز ایک توضیحی رو عرض کردن خوب دقت بکنین از کردن مرموم اصلا محتقی بودن تمام سند توضیح, توضیح از اصلاه تمام سند و عرض کردن بردها خود رو برگشتن توصیح برای مشایق برسن خصوص مشایحشون از کرده احتمال سه هم هست که مرمومه استاد نهال نکردن و اون این که مرادهشون توصیل مصادر باشه هستن نه مشایخ باشه نه سماموسه هستن این یه بحثیست که چاست شد این باید رفته هر بشه رخلی. راه چیه سوال این که ابن قولبه رحمه الله بگه من هرچی نهر کنم از جال محصوب و عشقوزاست من از افواز شاز نعرولت گردم خیلی عجیب سمی داره که در وقعات عجیب و هم شباز داره هم از روایات منطقی به حبیه باره و حنس و این و کلان داره خیلی که از بعضی که متهم به کس بند داره الان آخری از کنم این چون مربو مرسا دارم این حبارت ظاهره در این که ناسه جمیه هستند در اون مقدمه موجه هست فرمودن ظاهر هست بعضها فرموندن که ما مراجعه کنیم تو شبیه که, که زابین و زابین و مراسی اونها داده پس این اعبایت نمیشه اخوزه به ظاهرش کرد بعضها خلافنده ظاهره هم بر بکنیم برمشاگر تبدیرشون خلافنده ظاهر که واقعا هر ازشون که مقدر متفکر و اصولی شد تو ظاهر ما توضیح دادیم اگر کسی ظاهر کلام و شکمتنی بود با اون نشه عمل ب این چه بی ظاهر صاحب یعنی کلافه اداره معنی بی کلاف از این طوره کلام هیچ ظاهر بود به تعبیر در تصحیح کمی استفسره خوب درست بعد به کتاب مراجعه کردیم که این معنای ظاهری معنای ظاهر روشن نیست ابهام داره می‌گی دارد. ایشون از خلافنده ظاهره بر خصوص اول استفسره تعلیدن خلافن بزناشم بعدم قدر متعقل ایجاد تصدادتا میشیم توی منوارسته اساس زهور تو جلده همین یعنی دوی نسبه ها مثل ما قاعدم برای کلام باید انعقال زهوروشون قدر متعقل انعقال کلام باز در حد چون اینجا چیه توصیه ده تقرد میکنی من کردان ارز کردم همچنان که در توسیق خاص باید حتی در توسیق باشه مثلا بحث یا فلان خیلیه این توسیق هست یا نه؟ فلان فازله. در توصیفات آمن همینطوره در توصیفات آمن عبارت باید صریح باشه که جمعی افراد توسیق باید اون صراحت باشه فهم میکنم توصیفات آمن با توصیفات خاصه باید که در توصیفات آمن بیشتر تکیه هست و راهش چیه؟ این راهی که ایفرون رسن زاده را خلاف زاده در احسی بکنیم احسی کردم راه اینا نیست که ایفرون درسن. راه دریغش اینه که ما باید با اصطلاحاتی که در همون زمان متعارف نگاه بکنیم یعنی پس این وقتی مرمومت کلمی میگه دل آثار صریحه باید ببینیم به اصطلاحی که در محیط شیعه برای آثار صریحه مطرح بود به اون کنیم. یا محبوب شاگرد ایشون محبوب ابن قدره در اول مزار در اول کانور زیارا که میفرموند از محرجانمون تو بینمون از شوزازون اخراج نکردن حدیث نحمدی این باید همه اصطلاح زمان رو نگاه کرد و ادلاعای چند بار رو عرض کردن این که جمعی رو نگاه بکنیم این اصطلاح اهل سنت وزیدن از کردین به دایات این اصطلاح این نقاط تاریخی در ذهنتون باشه به این اصطلاح از سالهای پنجاه شروع میشه. اما خود اصطلاح تقریباً از سالهای به بینه بسند وقتی میگو خیلی صحیحه یک زوابطی داشتن امده اون زوابط در جمعی سلسل سند نگاه میشنن خوب درقت بخونه وقتی گفتن صحیح بخاری صحیح محبا محبا مثال صحیح مسلم یعنی که میگوهتن یعنی از اول قصاد خودش تا اون کسی برای صلاح برمیگرده این یک نقطهی رو در صحیح ملاقظه که میکنه اصطلاح این نکته اون یک در اصطلاح فنی احرستانش شرط اون شرطه که میگوه میبینید صحیحال علاشت مصرم صحیح شرط رو بخواهی هر کزون شرطی دارن یا اون نقطه ای رو که در صحیح هست خود دقیق رو کنه از اول سن هست تا آخر سن پس این یک ای ای اصطلاحی بوده این ما باید کلام رو جلبه این اصطلاح از سال دیویر شروع میشه پس این کتاب صحیح بخاری متعبای 256ه طبعا معافل مرمون فضل نشازا 266 و مرحوم ابن قدره سی سر شهستانوه سی سر شهستانوه یا لحظه برویزیه ندونیم سی سر شهستانوه یا شهستانوه به قصد میکنه یعنی سد و مثلا شهست سال بعد از این اصطلاح آیا واقعا این اصطلاح در کلمات همین اصطلاح هم از زمان علامه از همه در عبارت ما آمد این اصطلاح آمد تا الان یعنی آید و وقت میخواهی حدیث صحیحه یعنی, یکی مثل پیشون ها ادالت بود. پیششون یعنی این معیاری رو دارن مثلا معیار کی شیشون وثاغته معیار کی شون‌ها عدالت بود معیار کی شیشون وثاغته یعنی این سلسله اثر از اول تا آخر وثاقت بدن این معیار مورد از معیار اینه باید این معنادرو دید که مرحوم ابن قوله نظرش به چی بوده ما همین چرا این بحث دیگه فکر کنم یه کاملا استادانه شده باشید از هیچ شکل از اصحاب ما این اصطلاح اهل سنت رو نداشتن اصولن بیاست ترسلسن رو نگاه کنه از زمان رو از اونی که مستلح بود در اون زمان دو تا بود چه در بغداد و چه در قم بیشتر مستلح دو تا بود یکیش مشایخ بود همین حتما دیدین دیگه در وجهاتم چندید که کتاب نوازونی که کنم و مرمونی از روایتش استثنان کرده کتاب نوازونی کنمه و تبدیل استثنانشی که ماکان نفیه ها انترلید زیاد روایاتی که از سرلید حدود دیست نفیسی نفر بیستود و نفر, نفر اصم گفته این روایت قابل قبول نیستن بقیه روایات قبول میشه توجه رو ما از کردیم تمام این بیست رفر مشایخ هم تا آخر سنت میهیم اصلا این بحث تا آخر سنت مانه سنیا بوده ما مانه خوبه یعنی این معنیی که الان آیت دویی میفهمن این معنیی که الان در ذهن ایشان هست که از زمان همدامه در بین ما شروع شد این در حقیقت در اون قرن دوم و سه و جز اصطلاحات اهل سنت بوده جز اصطلاحات ما نبوده مثل ابن که شیخ واقعا استاد اکراز در مرز سیار بزرگواری استرین که هم ایشون عالی این روایت استثناء کرده در تمام موارد استثناء فقط مشایف هم فقط و فقط مشایف بقیه استفاد ممکنه بقیه استفاد باشه؟ استفاد کار من داشته از کردیم این سازیگه من از مرحوم نجاشی میگه من با ابا مفضل بودم از شمیدم با که ضعیف بود ازش روایت یک نمی کنم مراد از واسطه مشایخه یعنی یکی از مشایخ بیاد بین من و او واسطه بشه من قبول این یک معنا بوده اصولاً ارزیابی کل حدیث رو همین استاد می کردن هر هر درافت چی میخوام بگم ارزشیابی حدیث رو و تذویر حدیث رو به استاد می پس این قاعده کلی فن هم دل لفظ علاف القالب ظاهره این ماله یه ایشان با اصطلاح اون زمان آشنا نبوده این که همهش و از خصوص مشاعری از اصطلاح اون زمانه این اصلا خودش اصطلاح اون زمانه نه هم لندن الا علا خلاف ظاهره در اون زمان اگر میگفتن من به این رواد باید اعتماد دارم چون از استاد چه میدم قرمون هم میگه کل ما سهر و شیف و من قبول میتن اگر یکون قبول تصیل نکرد من قبول نکن بلا مالاییو سه ها و شایه کنهاییو می یک روایتی رو در اون دارم که این روایت هم روایت منحصه به فردی هم هست خیلی ارزش شکری می داریم روایت ما تو بحث تاروز مفصلا راجبی این صحبت کردیم این تنها روایتی در باب تاروز که حل تاروز رو از راینا سند و شمرت و از این حرفا وارد نمیشه تاروز رو از مضمون و حکم حل می‌کنه. هی مهم نیست. دیگه دو مادر ثنا به این حرفا بیفته میگه اون دو حدیث متعارضه باید نگاه کرد مضمونشون چیه؟ از راه نسبت سنجی معموم که یکی طریزه باشه، یکی سنت, سنت باشه، سنت اجزامی باشه، سنت از از سن راه دیگه‌ای باشه. در نظر بگی. این رو روایت اولی اخبار زر، ان شاء الله اگر همین بحث تعارض عرض می‌کنه. در تمام روایات باب فارز ما منحصر به فرد هیچ مسئولیتی نسبت از امام زمان شده صراخ الله یک روایت منحسر به فردیه که یک راه خاصی رو برای حل تعارض میبینه به چه این راههایی که ما الان داریم این سرش اصح این که بیشتری این اکثر این اصلا ایمان از این راه وارد نمیشه اگه بیان مضمون اون به تا حکم رو ببینیم اصلا نسبت اونها چیه از از سنت هم چی جویه. اون به اصطلاح ما تعارض و از راه داخلی حل میکنه، نه از راه شواهد خالیچی این که به وقت منحسه بفند بعد از این که ایشون راه که می آره خوده چی میگه؟ میگه کان شیخ راه ابن البری سر یه رعیفی محمد ابن عبدالله مسمعی راوی ها دره بایه خوده استاد ما یکون ربون ندار دقیق بکنه الان این ردش در انجام نمیدن دیگه. وقتی راوی یه داغی درمون نداشت، یار فرض داشت. می‌دونی؟ یه خود مروان اینو ولی اعتراض نداشت، یه رأی بود. این آیه محمد بن عبد الله بن اسمعی رو قبول نداشت، ولی قرأته علی حاضر روایت کتاب الرحمن سعد بن عبدالله، فلن منکرها علی. اینو خوندن قبول کرد. استاد قبول کرد. ولی معنای خود استاد تئاتریه، تو خیلی عجیبه. فعب راستی اوهانا من قبول کردم چون استاد عبود پرموزن من را بر اعتمادن این حدیث را در اینجا آبودم هم سردیه یه روشیه الان در بین ما ایسا شده اما این روش در قرنهای سربون چارون پنجون بوده این این کارکویی بیده قدرته چیلا کیسی که بود به ارتکاز تقاحتیشون علمیشون میگم حمله برمشایف بکنی بعدا تعلیم خلافن من خلافنده ظاهر نه چه این عجیبه این واقعا من متعدم برزر افراد ماهی جدن مندلا هست این محصولی که ایشون فهمده هست هم ظاهره هم هست نه خلافنده ظاهر یعنی خود ایشان تصور میکنن خلافنده ظاهره لیکن در واقع به ظاهره همین محصولی که ایشون برده یعنی شون ارز برای خش های یه باتر دنبال اون ارتقاات می همش اطلاافی عی نباشید که نفر یک نفری یک مطلب رو تکلم میکن درست هم هست و از کادشم نادرست زمان اصل مطلب درسته خلافنده ظاهر نیست به بااهند ظاهره وکه ظاهره اون زمان ظورار کوی ظاهر زمان ها یک کلافنده ظاهره پس حمل کلان بر خصوص مشاه این معرب ای چیز بود چیزی طعارن میدون زمان تمام اینکه که حمله بر مسادرم متعارف بوده خوندید بردی عبارات دیگه چونه تو که جمعی آمافی مستخدم در کتاب مشروعه دردید بوده این متعارف و نذا اگر ما باشیم و عبارات محبوم کامور زیارا با محیط و اون زمان احتمال اینکه که جمعی سند مراد باشه این نیست چون این نبوده اصلا پیش شیعه نبوده این خلاف زاده این که آقا کوی زافر گرسته این خلاف زاده نسبت اصلا شیعه راه رو نمی رفتن. شیعه این راه رو که بی از جمعیه سرزنگاه بکنه نمی رفتن. اونی که متعارف بوده در اون زمان یک پرسین تقییه ملا نبوده روایات من معتبره تو ذهنشون این بوده یا مرادش از مشایخ ثقات گرفته یا مرادش نه از مصادر منخمده گرفته خود دقت کنید وقتی کسی در اون زمان مینوش ده روایات من همه قابل اعتماده <تصفيق> و افتقامیدم هجته صحیحه این یکی از این جراح بوده یا از مشاید قابل اعتمادی اعتماد بوده بسید رای آسان مزمونه حساب میکردن یا از مسادر قابل اعتماد پس این عبارت هم که ایشون در اینجا آوردن رو روچند شده اینکه الله تعالی عبارت مزار را هم کندیم به این تربیری که گفتیم بعد ایشون وقتی ما انداره تماسیم مترسی بعد بعدشون بعد ایشون مرحومه آهی صاحب سا وسائل متعرض که اشکال بعضی از اصولی ها میشه وقد دعا و چهل برد اون بحثش اینه که ایشون بگه همون قرارینه که زمان شیخ و صدو و برکوله بود الان هم موجوده بعد ایشون بگه وقد دعا بعض المتأخرین اختلاف تر اصول به غیرها میگم خیلی خوب قدم داشتن. الان قدما قرآن داشت الان در سما نرسیده ما الان برای که حضیل شناسی بکنیم بریم باره علامه را اجام بریم نره با قدما که قرآن نیست و عدم امکان تمیز و اصول و خباق قرآن و انهم لذاره که و اول اصطلاح الجدید بریم دنبان این اصطلاح جدید وش باقیست بعد مرحوم سال وسائل جواب میده وزاره که معلوم ممنوع اون این اراد و حصول او فی زمن اصحاب کتب الاربعه بل ممنوع اون مطلقه ما این مطلب رو قبول نده بل ایشون رو را به نظر شوکی کرده ایشون ایشون میگه ولی که شعری کیف حسن ها در اندراز و ها در اختلاف فی زمن و به شعری احمدان صابوس از کردم مده این اصطلاح احمد بن صابوسه را که انتشار سراسر علامه است، باید با علامه نسبت داده شود. الّذین اخذوا در اصطلاح الاصطلاح که ما سرهدی صاحب المنتقى و بیروت از چند حوالی قبل ihtiyaj to tashih بعد ایشون تعبیرش میگه مثلا سهم صابوس در سال مثلا من باب مثال این اصطلاح درست کرد. این معناش اینه که مثلا روز نبوده، حضرت عجیب از سوال ها سوالی به شوال ها قریبیست خیلیوم اللر و احدثا هفید ولم یحصل به ساعت او او شهر او سنته میگه مثلا قبل نبوده به نظر به شوخی عصیبت هرچی حضرته واقعا نرسیش خب مراد زمان اینطوری است که سال 660 ماه مثلا جمادی الاول بوده مثلا پنجو جمادی الاول این دراز شد به اختلاف پیدا خیلی عجیب واقع شده در زمان و نسی هم هست مثلا فرض بعد از کلی نبر درصد اختلاف پیدا میشه این دراست بعد از چه سال مثلا هفته درصد بعد از چه کسی این تدریجن هی ای جدا میشه طول زمان تا اون زمان که میرسه تا ممكن مثلا 50 سال بعدش یه کاملا اختلاف و پیدا وی داشده بر قانون به اصلاح الفن فیکون تل اصول و اختلاف و قله كله رو، واحده او یوم واحد خیلی این تلافی انشاء این لاطاوری به شیوهی است که بقیه این به خاطر ظواهر هم نکات رو می‌گیره و تصرفات راحتم ومصارد عبد الله